این داستانک هری تنبل هری خیلی تنبل بود. اون کار چندانی نداشت. فقط باید بزو به چراگاه می برد. با وجود این همیشه وقتی بعد از کار روزانه به خونه برمیگشت گشت می گفت واقعا زندگی چقدر سخت و آوره. من کار طاقت فرسایی دارم و لابد باید سالیان دراز این کار رو انجام بدم. باید هر روز بوزها رو به چراگاه ببرم تا پاییز برسه. بهتر بود آدم مدام دراز می و با خیال راحت می خوابید. اما حیف که ممکن نیست. مرتب باید مواظب باشم تا مبادا بوزها به نهالای جوان صدمه بزنن یا از پرچین عبور کنن یا از دیدرس من دور بشن. با این اوزا احوال سخت آسایش و خوشی برای آدم باقی نمی یکی از روزها ساعتها نشست و فکر کرد تا ای پیدا کنه و از شر وظیفه‌ای که بر دوشش هست خلاص بشه تا مدتی چیزی به فکرش نرسید ناگهان چیزی در ذهنش جرقه زد و فکری به مغزش خطور کرد با صدای بلند گفت آهان حالا فهمیدم چی کار باید بکنم با کیت چاقه زواج میکنم او خودشم یه بوز داره اون وقت هر روز به همراه بوز خودش بوز منو هم به صحرا میبره و به این ترتیب از درد سر نجات پیدا میکنم. هری با این فکر از جاش بلند شد. با تنبلی پاهاش و حرکت داد و از عرض جاده عبور کرد. خانه خانواده کیت کهیت چاقه در همون نزدیکی ها بود تا از اون دختر پرکار و پرهیزکار خواستگاری کنه. پدر مادر بی معطلی موافقت کردند. چون فکر میکردن همین که اون دوتا یکدیگر یکدیگر رو پسندیده باشن کافیه به این ترتیب کیت همسر حری شد و در حالی که اون اوقات خودش رو به تنبلی و خیال بافی میگذروند کیت هر دو بزی رو برای چرا به صحرا میبرد. هری فقط گاه گاهی از خونه بیرون میرفت بعد از این بیرون رفتنهای گاه و بیگاه بیشتر از آرامش خونه لذت میبره و اگر گاه این کارو نمی کرد دیگه از استراحت کردن لذتی نمی برد. مدتی بعد کمال همنشین در کیت چاقم اثر کرد و اون دیگه دست کمی از هری نداشت. یکی از روزها کیت گفت هری جان چرا باید زندگیمونو تلخ کنیم و بهترین ایام جوونیمونو با سختی بگذرونیم؟ این دوتا بوز هر روز صبح مایه درد سرمون میشن. بهتر نیست اونا رو به همسایمون بدیم و در عوض کندوی اصلشونو رو بگیریم. ما میتونیم کندو رو در جای آفتابی در پشت خونه بذاریم. این کار بی درد سریه و دیگه نباید هر روز اونا رو به چراگاه ببریم. زنبورا خودشون در بین گلا و علفزارها پرواز میکنند. خودشون هم به کندو بر میگردن و بدون کمک و دخالت ما اصل درست میکنند. هری در جواب گفت تو چه زن باهوشی هستی؟ بی معطلی باید این کار را انجام بدیم. تازه اصل خوشمزه تر و برخلاف شیر بوز مدتی طولانی قابل نگهداریه. همسایه با میل و رقبت کندو رو با دوتا بوز عوض کرد. زنبورها از بام تا شام بدون وقف پرواز می کردند. به دفعات به کندو برمیگشتند و بالاخره داخل کندو رو اونقدر از اصل پر کردند و در پاییز هری تونست ظرف بزرگی پر از اصل به چنگ بیاره. اونا ظرف اصل رو روی تاقچه اتاخها گذاشتند. چون ممکن بود کسی اونا رو بدوزده یا موشها بهش دسترسی پیدا کنن. یکچاقه چوب دستی محکمی از درخت فندق تهیه کرد و اونو کنار تختش گذاشت. تا بدون اینکه زحمت بلند شدن به خودش بده با اون چوب دستی مهمون ناخنده رو بزنه. هریه تنبلم همچنان تا ظهر در رخت خواب میموند و میگفت هرچی زودتر بیدار بشی بیشتر ضرر کردی. صبح یکی از روزها که پرتوه آفتاب اتاقشو کاملا روشن کرده بود، از خوابی طولانی بیدار شد و به همسرش گفت شما زنا خیلی شیرینی دوست دارین تا حالا هم تو مقداری از عسل رو خوردی قبل از اینکه ظرف اصل خالی بشه بهتر اونو با یه قاز عوض کنیم کچاقه گفت تو میخوای که من خودم رو عذاب بدم و نیروم و صرف یه جوجه غاز بیارزش کنم که چی بشه؟ البته بعد از اینکه صاحب پسری شدیم اشکالی نداره هری گفت خیال میکنی اگه پسری داشتیم به کارهامون رسیدگی میکرد؟ این روزا این روزا بچه ها اصلا کاری به کار بزرگتران ندارن به میل خودشون زندگی میکنن و خیال میکنن عاقلتر از پدر مادرشون هستند مثل اون پسری که به جای نگهداری از گاوشون چند وقت پیش اونو به کسی داد و سه تا پرنده سیاه گرفت کیت گفت ها, خیال کردی اگه حرفمونو گوش نکنه پدرشو در میارم. با همین چوب اونقدر میزنمش که نفسش بند بیاد بعد چوبیو که قرار بود باهاش هاش رو فراری بده برداشت و به هری گفت نگاه کن همین چوبو بر سر فرق پسری میزنم که حرفم گوش نکنه از بدچانسی وقتی چوبو بلند میکرد چوب به ظرف اصل خورد اونو شیکست و اصل روی تخت خواب و روی کف اتاق ریخت هری فریاد زد پس نه قاز قسمت ما بود و نه پسری که قازو به چرونه تازه ما خوش اقبال بودیم که ظرف اصل سرمون نریخت باید خدا رو هزار بار شکر کنیم که سالم و تندرستیم. بعد دور رو نگاه کرد و چشمش به تکهی از ظرف افتاد که کمی اصل توش باقی مونده بود. رو کرد به همسرش و گفت ما این اصل رو میخوریم و تا کمی دیرتر از معمول میخوابیم. طوری نمیشه. روز طولانی تر از اونه که فکرش رو بکنیم. کچاقه گفت بله هیچ اشکالی نداره. همه چیز به خیر گذشت. راستی این داستان و شنیدی که حل از اونیو به عروسی دعوت کرده بودن. اون انقدر کند راه رفت که وقتی به خونه عروس داماد رسید مراسم نامگذاری فرزندشون بود. تازه وقتی پاشو روی پله خونه میذاشت میگفت عجله کار شیطونه سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها.